أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقط قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقرأوا وادفروا نظمة الله عليكم إذ كنتم أحباء فألد بين قلوبكم فأصدفتم بنعمته إخوانا أصبحتم بمعنته إخوان وكونتم على شفا خفرة من النار فأم قدتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تنهید و ترغیب الى القتال لیکن برای قتال که انسان بتواند برای خدا جان و مان خود را فدا کند تقوی لازمی هست بعد از ایمان باید تقوی داشت کن تقوی سروران گرامی یعنی چی معنای بمعنی ترهیز اشتناب از چیز ترهیز و اجتناب، بزرگان گفتن تقوی همه شی مرحله دارد پرچه اول از کفر و شرک اجتناب، این اولین تلیه تقوی هست با موجودی کفر و شرک به هیچ عنوان انسان متقی نمیشه درجه دو اوامر الهی رو بجاہ آوردن و از منحیات اجتناب کردن انتصال اوامر و اجتناب از منحی این درجه دو تقویه است بدون این چیزا همیش انسان متقی نبیشن و درجه سی تقویه اجتناب از هر غیر خدا یعنی تبتل کامل کاملا انسان به خدای عزواجل متوجه بشود که از همه چیز ببره که این مقام بسیار عالی هست و خدا پیانبرش را برای به آوردن این مقام فرمود و تل الهه تبدیل این هم بندگان خاص خدا می توانند ولی در دو تقویه باید باشد درجه اول باید باشد اجتناب از کفر و شرق امتصال اوامر و اجتناب از مناهی خوب این ترک کفر و شرک، اجتناب از کفر و شرق و امتصال اوامر الهی و اجتناب از مناهی چه غدر باشد تادم مرک نمی رید مگه شما زیر بار خدا باشید یعنی زیر بار طاعت باشید اوامر الهی را انجام بدید و از منحیات اجتناب بکنید بعد از اجتناب کفر و شر زمان این تقوار را بیان کرد تابن مرد باید هم از کفر و شرک اجتناب بکنید انجام وظایف داشته باشید در اوامر و در مناهی. ایک اثانی که شما ایمان آور دید الله. به ترسید از خدا اجتناب بکنید از کفر و شرک اجتناب کنید از مناهی امتصال کنید وامر را حق تقاطی همان اندازه که حق کی ترسیدن خدا هست یعنی تا اندازه که کمانی جاید گرد برموده که پتک اللهم مستطاعتون هر اندازه که استطاعت شما هست لغا حق تقاطی هی شیلی بالایه اگر اونو نتوانی کن دازه خود از خدا بترسید نا فرمانید نکنید خوف خدا در شما باشد موت برای شما نیاید هرگز مگر در حالی که شما کے دو خدا پرست باشید شما مسلمان واقعی شما مسلمان باشید یعنی زیر بار طاعت باشید از خدا زمان تقوی طولانی سروران گرامی چرا زندگی انسان مشکست نیست اگر هر انسانی نیدانه که در پایان رمضان برای او موت نیاید او غیر از صرف خدا دیگه چی فکری در قلب خودش نیدارش انسان دیگه هیچ پتابوری و هیچ فکری را برای خودش را نمیدار و قبل از مرگ هم همینو یه حکمت رب العالمی هست که انسان را سری تیری امیدها و بایت سر چیزهای سرگرم کرده و نگاهداری می کنند ورنہ این انسان موجود بشیار پسکنو پسید می که من می میرم و همه چیز را می گزارم باز هم قدم به حشن نمی گزارم و تصمید حبلاللہ صبح سے تالیس قلبیه خوب برای اینکه که شما متقیب مانید و تا آخرین لحظه شما بر ایمان و سکوا و اسلام بمانید رمزش و راهش چیه انسان تا آخری لحظه بتواند مسلمان بماند و انسان متقی بماند رمز او چیه اینه ما از کجا بگیریم و این دوام برای ما باشد می فرمد اعتصام بماند تنسک هست تمثب کنید و بچستید به ریسمان الهی خانه شما بگه اینجا استثنان نکرد ملا را که ملا ریسمان خدا بچسته با کلمه جمیان زن و مرد، پیر و جوان سالمند و غیر سالمند همه به ریسمان خدا بچستید تا که شما از کفر و شرک اشتناب بکنی دوا میرے الہی را انجام دیدید بین ان رسمان محکم الہی بچاس کی وَا تَسِنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا مُتَفَرِّقْ نَشِئِ هر یکی ایک مسیری را نبری خامئے شما این رسمان الہی بچاس کی رسمان قدا چیئے توحید خدا خدا پرستی قرآن عظیم و این اون رسمان مستحکم الهی است دین چند بزنید و وذکرو نعمت الله علیکم هر روز یک نعمت جدیدی بر شما رسد از خدا همین زندگی خودش یک نعمتیه همین صحت و سلامتی همین اشتغال رشت خوردن و خابیدن و این اشتفایات همه هر از اینا نعمته اگر خدا از یک انسان زائکه غذا را بگیره چقدر برای او سخته که غذا در امن نمیتونم بکنید چیزی نمیتونم بکنید تو این بر اثر غم هست هر لحظه بر شما یک نعمت نیارد این نعمتها را یاد کنید تو رمز دیگر بخواه شما بر سکواه است که به کسرت از نعمتهای الهی یاد کنید وذکرو نعمت الله علیکم این نعمتهای هر شب و روز الهی را که بر شما می آین متبادلن می آین متعاقبن می آین جدید حضرت استادی علی رحمت می گوید هر نفس ایک نعمت مجددش وقتی درون می رواد و بیرون می آید این ها نعمتهای مجددی هستند و در برابر هر نعمت شکری وقت همین نعمت نفس را همانا هم نکنیم تشکر کنیم یاد کنی نعمتهای الهی را بر شما شده خصوصا هنگامی که بودید شما آداءن قبل از اسلام دشمنی یک دیگر بودید اوش درست اینها باید دیگر اداوت داشتن شما آداب بودید بین یک دیگر باید دیگر اللہ تعالی احسان کرد ف شما به این اسلام یا بسطه سلام باشد شما برادر برادر سودی، بسکناب نیمه تیلایی شما برادر سودی. او کابلش از این، از این و کنتم علاش شفا حفرت من النار، بودی شما در کنار آتش جهان برشم از کنار آتش جهنم بودی، فان که وکومینها از خدا نجات داد سمارا از اون آتش جهنم بیاسه اسلام و بهشت فیگنبور و قرآن. این سلامت اللہ تعالی سمارا از آتش جهنم نجات داد. کدالی کیوبای گین الله علیکم آیاتی همچین تبینی کنت اللہ تعالی برای شما آیات اشرا تاکہ شما بر راہ مستقیم ثابت کدم بمانید را لکم تحت دون بر راہ مستقیم ثابت کدم بمانید رای آفته شوید خود یک رمز که شما نیتوانی تادن مرگ بر اسلام بمانید همه شما برشمان خدا بچشکید همه شما نام از نعمتهای مجدد خدا یاد کنید که خدا چی نعمتهایی خصوصاً این الفت و کی که به خاطر اسلام رسیده هم نعمت خدا را یاد کنید و هم به خدا خدا و سواب یک دسته از شما آمرین دل معروف و ناهونن المنکر باشد این دیگر رمز بکای شما هست که شما می توانید متقی باشد فرمود یک جماعت. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا أَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ بَعْيَدْ بَاشَنَا شُمَايِكَ أَوْ أم أُمَّتِي كَدَعَوَتْ بِخَيْرِ لنا اشاره کر کرآن ازی مشان انجا گفت دعات سنی به قبل الله جنیا به کرآن و دین توحید هم نباید بیشکی، لیکن دعات که کم متقاضی، داعی دا ila الخیل جماعتی ازش ما باشند، امر به معروف ونه از منکر و دیپه اجتماع هست. لذا امر برای ایجاد معدوم نیست بکرینه کنتم خیر امت نخرجت للناس حضرین وزیفش ماست باید ات شما یک امتی دائیل الخیر خب الخیر دو یا و یا یعنی و نهی از منکر کنن دایی الالخیر دو, دو شبه دارن هم به بمعروض کنن و نهی از منکر کنن و مراتب نهی از منکر را فیغمبر علیه السلام بیان فرمودن که من را آمن که منکرم فلی غیر حبیدی بي. فلی نمی از سکر صد چه لنیسته صد قلبهی و ذالک از اپل ایمان و لیکن ما منکره فقط با قلبت بدانیم زریفترین ایمان معرفی شد از افترین ایمان با دست دوم دو با زبان و شیبون با که امروز متاسفانا دو شعبه اول از دست ما نمیش. نه امر به معروف میتونیم بکنیم نهی ازمان کر کنیم دست و نه هم میتونیم نهی ازمان کر کنیم لحظا با زبان ما قدرت تبلیغ را اون تبلیغی که انبیا کردن اون تبلیغی که اولیاء الهی کردن امروز هیچی از ما نمیتونید بکنید چه منکری کریم بالاتر از کلمات شرکیه است؟ منکری بالا تر از این همه خرافاتی که امروز در میان امت جا گرفته ما قدرت نه از منکر فرمان بعض دوستان برای تسکین غلب خود برای آرامش دل خود میگه بابا امر بیمارو که نما زخان درو زندگی حج کنید نه از منکر لیکن نا قرآن این دو چیز را جدا ذکر کرده. و اولمها هم میدانند، شما هم عالمی که یا مورون بالمعروف معروف بر آن و یا نخونه این مون کنه. یادونه خیر آن هست. دعوت ایال خیر، دعوت ایال خیر این جهاد باللسان هست. یعنی تبلیغ. به بمعروف و نهی از منکر این جهاد و به هست با شمشیر که متاسفانه این اون روز بامانی هست فوقش آنهایی که از ما خیلی دلیرتر و ماهرتر و ایسارگر فقط یک عمل خیلی در حد زبان به میگن که با آن همه باشد کسی که خناف خطر را میبرد حاسب نیست کسی خود را ناراحت میکنه. من در بسیار موارد در قلب خود من این چیز بسیار میکوب اد مرا که خب اگر تو تبلیغ هست میکنی و, و تبلیغی و مولغی و واعظ قرآنی چرا این انسانها که تو تشخیص لادهی که راه گره راه میروند این هر تبلیغ رو می چرا در مساعدت اینها در اماکن اجتماعی اینها چرا تو نمیری و خود را به ماظر یه زمان یکی قرد می و فلان و فلان من نام یک جایی رو گرفت و من گفتم بیا تو واقعا همی توحیدی او همی توحید نبود تنکید می کرد بر حنفیتو تنکید می کرد بر شافیتو فکر را رد می او به زان خودش توحید داشت و سکر را رد می تو دی. دی من گفتا شما واغیر مپخشمدار توحیدی بیم من با تو کول مردانگی من تو میریم دوتائی فلان جا فقط فکر بغیر من بیش توحید من بیان میکنی خیلی من اصلاح کرده من اممه این غد جرعت نگه که خوب بریم همین غد هم جرعت نکرد بریج جای تجمعه که نه وادا می میشه دو شهر که فریو جری نیست من وقتی تو بیام من بیان میکنم تو بغل من بیش من انسانیم دو نفر باشم بهتره هر چی میگم اون فکر میکنه شاید من میرم نمیدانم کی من رو بیشتر میترسم ها همین طور اذیزان من امروز غدرت امر به ما رو کر هر من همین چیز را میگم تو ما نداری حالا شما هر برداشت داری برداشت من اینه که ما امروز قدرت امر به معروف نه از منکر ما جای امر به معروف میکنیم که کن نه از منکر میکنیم که آب ما سردش گرم نباشد گرمش سرد نباشد فضل ز مشکان ما ن سردی ببینیم فضل صاحبشان ما ن گرمی ببینیم اونجا دیگه ما امر به معروف و نهی از اون هم در چی بودی تو در بادی نماز خوندن روزه گرفتن و حتی و زکات کردن فاقش ما جرئت میکنین و عقاید زایغه و اباطیل را که قران هر رت کردون حرام ننمی تونین راض کن ما سلام ننمی تونی مساله اساسی اعتقادی را مطرح کنین بل اینها واغن که امر به معروف دایل الخیرن. امر به معروف و از منکر میکنن به چه ثمره مواجهان خدا توفیق بدهت که ما دایل خیر باشیم امر به معروف و نهی منکر باشیم الله تعالی فرموده که هم المصلیون همینها ها واغن رشتگارند او واغن امروز همین حرکت جزئی حرکت بسیار جزئی و محرمانه و سری امر به معروف را رسول خدا صلی اللہ و اصحاب کرام با تشویقی کردند سروران گرامی نمونه زنده امر به معروف و نهی از منکر زندگی بعدی رسول الله و زندگی صحابه رسول الله بود آنها برای امر به معروف و نهی از منکر جان دادند جان دادن تابط توحید را مطرح کنن جان دادن تابط اسلام را مطرح کنند. امروز ما تا جان ندیم مثل صحابه ما نمی این همه انسانیت را اولاق کنیم. حالا برای دعوت نماز اعتقاد منه همین حیال سلا بسه. برای دعوت روزه همی غد بسه حالا قدرتی هست که اگر کسی نماز نمی خاند روزه نمی گیرد او را اشت داد چرا نماز نمی خانی چرا روزه نمی گیری موازش شد با کسی که نماز نمی خاند منکره کسی که روزه نمی گیرد منکره اون قدرت باید در مسلمان باشد که موقع نمات بازار مسلمان با بازار کافر فرق باشد کاملا بازار مسلمان باید تحتیل بشه دیگه اونها هستا آمیرین بالمعروف و ناهی نمیل که ازان شد تا پایان ازان دیگه مغازه و بازار و دازو ستت نباشد همه در مسجد و اگر کسی تخلف میکنه در این فرمان خدا او را بازخص کنه اونه و لا تکونو باسم این احسانیه اضافه بر اذان مردم دم خانه ها میرن دعوت به نماز، دعوت به روزه، دعوت به زیخ، دعوت به فاکی یک مهمت اضافه هست و یک احسان اضافه بر آن دعوت هست که انسان انجام میدن و او را میرن دلالت میکنن مهرمانا میارن ولغا اینی که از احسانات الهی است که هر بنده خدای انجامش میده برای این هم ثواب می و هم نوی به اصطلاح سوزی و هم دردی و هم فکریه که انسان دارد نسد هم نوی خودش هم جنس خودش هم مکتب و هم ایده خودش دارد به که که خدا می الله تعالی می گه معروف چیه تاریخ اینجا نویشته کل ما وافق القرآن و اصلنا فرق معروف و کل ما خالق و فهو هرچی موافق قرآن و سنت است این معروف هرچی مخالف قرآن و سنت است اون منکر نهی از اون منکر باید کرد و لا تکون با مثل که متفرق شدن در توحید بخاطر زد و اینات بعد از این کامت پیش آنها بینات و اولایت لهم عذاب و آنها اینه که برای آنها عذاب عظیم هست عذاب عظیم روزی است که تب ید و وجوهن شخید میشن چهره و تصد و وجوهن سیاه میشن چهره خدا پناه داد فسانه هایی که سیاه میشن چهره هایشون اعلان میشود اکه پرتم بعد ایمان کن حایت کسو کردی بعد از ایمان دو نوع ایمان یک ایمان فطری هر مولود را خدا بر فطرت ایمان خلق میکنن یک ایمان به اصلا غیر کتری تشریعیه که بعد شما کلمه اظهار کردید گفتی لا اله الا محمد رسول اللہ لحظه بمقتضی لا اله الا اللہ, اللہ و محمد رسول اللہ عمل نکردن وزیر بار طاعت نرابتن این کفر بعد از اظهار ایمان شما بعد از اظهار ایمانی یا بعد از اظهار ایمان فطری شما کفر کردید حکر پرتم وشن الان میشه یقال تو، پرتم بعد ایمان کن بعد از ایمان فطری یا بعد از ایمان اعترافی حسن چشید عذاب را به شبب کفری که در طول تاریخ کردید یعنی عذاب ظلمن نیش بلکه نتیجه کفر شما و اما الذين بیذت وجوه هم آنهایی که شفید میشون چهرهاشون اللهم جل مانون هم و رحمت الله آنها در رحمت خدا هستند در این تعبیر که جنت از رحمت مهزه هست نه از عمل اللہ تعالی فرمونی در رحمت خدا هستن یعنی جنت سبب حقیقیش پزد خدایه هم فی آخالدون همیسه در جنت میبانند ذل کا آیات اللہ جملہ معترضہ برای صداقت رسول اللہ این آیات الیہ سما بار سما تلاوت میکنین بہ حق یعنی موافق حکمت و ما اللہ رید ظلم للعالمین جواب الصراخ دپسوا و اللہ تعالی اراده نکرده ظلم را برای جهانیان در جزاء سزا و, و در دستور جہاد اللہ تعالی اراده ظلم را بر عالمیاں ندارد بلکه جهاد بخاطر چیه سرورانی درامی؟ جهاد بخاطر اینه که انسان حکمت رهبران و حکومت برقرار کنه. جهاد بخاطر این که ائمه ای کوف، رهبران کوف، زمانداران کوف از قدرت و رهبری کفر بیان کنی و دعوت به انسانها ابلاغ بشه. اگر صحابه در ایران و روم با قدرت جهاد وارد نمی شودن و سازمانی ها را قدرت خدا پای نمی آورد. آیا برچه اسلام خود به خود در ایران به احترام بردیم؟ ایرانیان من هستند. جهاد بخاطر اینه. الله تعالی شما را که در سر می ده بر جهاد کنید با این انسانها هدف خدا پس خدا چرا استیصال نمی کنه؟ دوستی قوم های متمادی کرد خود جهاد دستور جهاد یک نعمتی ہے که آن یک سریعه انسان جہنم جهنم نجات کنے قدرت جهاد وقتی می آید چه تره کفر می زمین دعوت و تبلیغ و ارشاد عرض کردن قرآن آسان میشه، و دعوت آسان میشه، امر آمر به معروف آسان میشه، شے از ملکر آسان میشه، و خود به خود ایمان جا می و عمل رسول پاک صلی الله علیه وسلم حماین بوده. باقی خدای عصر و جل بدون دستوی جهاد همه چیز به خدا اقتصاد دارند این دلیل توحید اقلیه و ترغیب و تشکیب هر هرچی در قبض قدرت خدا هست لذا از کفر و که از کفر که همه چیز در قبض قدرت الله هست به خدا اقتصاد دارند چی در آسمان ها آسمان چی در زمین و به طرف خدا ارجاع داده بشن تمام امور خود خو بعد آمد اسات توحید و تردید شرک را ادامه بدهی کنتم خیر امه شما بهترین امتی و اخراج شما شده است برای نفرشانیم مردم بزرگترین نفعی که قرب کارخانه بزنی هم به انسان نفع میرسه زمین کشاورزی رو مساعد کنیم و باغ بزنیم کشاورزی رو پیشرفت بدیم هم به انسان نفع میرسه دامپروری کنیم هم به انسان از این دامپروری ما نفع میرسه پشم و مو و پوست و شیر و روغن و این دام‌ها اینا نصفش به انسانها بر نمی این دامدار خودش که رمه چند رأس گوسفند چند هزار گوسفند من منفعتش به آما میرسه بلکه منافع این دوستان ها به تمام دنیا میرسه یکی از پشم استفاده میکنه یکی از کور و مویان استفاده میکنه یکی از حتازه استفاده میکنه و یکی از گوشت شیر آن استفاده میکنه خلاصه اینها هم منفعتانی لكن الله تعالی میگه نفرسانی که شما برای آن پیدا کرده شده اید و خلق شده اید تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و بالله این خبر به معنای انشایه امر به معروف کنید و نعی از منکر کنید برای امر ثابت قدم بمانید و تومنون بالله و یقین داشته باشید که شما معمور خدایید این نه که شما قبل از بازی ها اینطور ماند میکنن که بعد ایمان گفت، اول امر به معرف کرد، نه. اینجه تومینون بللا منه اینه که شما بر مفتزاي ایمان همین امر به معروف و نه از منکر را یقین داشته باشید که وزیفه الهیی که شما انجامش میدی بر این مثلا باور داشته باشید چرا وقت امر به معروف و نه از منکر بشود شما مورد ازیت و آذار قرار می گیری وقت مورد ازیت و آذار قرار گرفتید بدانید که این ازیت و آذاری که به شما وارد می شود به خاطر امر به معروف و نه از منکر شما اسیر میشید، کشته میشید، جلاوترا میشید، ضربه میخورید، با شما جنگ‌های اقتصادی و غیره میشود، یقین داشته باشید که شما حکم خدا را اجرا می کرد. شما بر این وظایف خود یقین هم داشته باشید. ولو امن اهل کتاب، اگر اهل کتاب تشویق میکردن این وظایف را خود را موظف میدانستم به امر به معروف نهی از منکر. و تسریق به دستورات الهی تو لکان خیر بهتر بود باقی از آنها و اکثر همون فاشکن یعنی حساب سر این ها فاسقا این به ما زرر می رسانا اللہ تعالی فرمود لن یدروکم الا اذا هرگز هرگز شما آمیرین دل معروف و ناحین ان المنکر و تشکی کنندگان حکم خدا را آنها زرری نمی رسانا الا اذا مگر یه تقریف زبانی با زبان نیشه سمارا تانهی بزنن با زبان دگر جرعتی و این مسلم سروران گرامی اگر ما واقعا دعیه الله باشیم دعوت غیر بر ما اثر نمی کند دعوت کمونیست بر ما اثر نمی کند اگر ما دعیه الله باشیم ما بدانیم دعوت الله را و تستیج هم داست باشیم که حکم حکم خدا حق دعیه را هیچ کسی نمی کند چرا؟ دعوت می دان شیطان بر شیطان هست دعوت خب برای برهنه نفس هست شیعتین انس و جن هست پس آنها ما را دعوت دیدن آنها آمدن که را دعوت دیدن دعوت ما وست مستدل به قرآن و حدیث باشد و تسکیه که خود الهی داشت باشیم دعوت ما بر دعوت انها قلبه نیکن بین خاطر قرآن عظیم و سر لن ید الروح کن دائیان حق و دائیان توحید و آمرین بالمعروف و ناہینن المنکر شما کمارا پرگز انکو فردگا نمی تونن زراری بیتن ترغیب اقتطال علی این همه من ارض کردم از یا ایوه الذین آمنو ترغیب ترغیب برای اقتطال بود اپتی برای چی؟ که میدان امر به معروف و نهی از منکر درست بشه. کمال برای دیگه هدف کی میشه؟ که ما به دعوت خود را علنی بکنید، به هرکس ابلاغ بکنید، اسلام خود را با عمل ارزه کنید. ساقابه همین کار را کردند. اونای اسلام خود را به جهان ارزه کردن با عمل، بین خاطر الله سبحانه و تعالی اطمینان ترغیب بر قرار میده اگر از این بیشتر همت کنن اگر بخاهن که از زبان هم دست به شمشیر ببرن ای آمرین بالمعروف و نهران المنکر که اینا بدانید که یالوکم ادوار اینا آخر به شما پشت میدن نمیتوانن مقاومت کنم با شما ثم لا ینصرون وقتیه پشت دارن دیگه از طرفی هیچ کسی میسرط نمیان بشرطی که شما آمین به المارو نهینن المونکار و جهاد شما جهاد شما برای امر معروف نه از کار باشد باید انسان اول بداند که چی مثل اون نباید که ذات کافر را به زمین و بعد مسلمان میشانم میشه دوباره مسلمان تبدیل به دیزار مسلمان نیست مسلمان تازه ملابه پرست این کرد نباید ما امروز از عظمت قرآن بیان میکنیم از عظمت سنت بیان میکنیم از عظمت علم بیان میکنیم به که خود ما قرآن را نمیدانیم خود ما سنت را نمیدانیم خود ما احکام را نمیدانیم اون واقعا دیگر اون چیزی که خدا میخواهد اون چیزی چه ده شهابه اکرام قرآن و دین خدم بذاشتند و با هدف عالی وارد شد. و هر یکی از آنها ستاره‌ی هدایت بود. به قبیله نسبت دادن فرمود: اصحابی کنندون. فوایی هم اقتدارتوم، اقتدارتوم. همکار کالن نبی صلاه. هر ستاره نوری دارد. یک ستاره نوری بزرگتری دارد. یک ستاره نوری کوچکتری دارد. ولی هزا با علم به میدان میانی. زور و توله مظلّت و اینما سکه تو. کویده شده بر این یهود و نصارا و اهل کتاب زلت و خاری هر کجا یافت بشون اِلَّا مَگر دو صورت من الله و وَحَبْلٍ من النَّاسِ او زمان یک مقدار زلت از اینها دوره که ریشمان الهی را بگیرن یعنی منهمت در عبادت باشن یا ریشمان مردم را بگیرن ماتخت مردم باشن غیر این صورت در هر جای نکتا زلت مر اینها شده. دشتی زلت معنی پستی احمد یهودی هر چقدر سرمایه داشته باشد احساس ناداری میکن زلت ممانعی پستی احمد مگر دو صورت ایلی ای نما سکیتو ای, ای نما بجیتو هر کجا یافت بشن ایلا به حبل من اللہ و حبل من الناس امروز زیر بار نسارا جه حبل من الناس هست یهود قرار دارد یهود را یک روز نسارا ویل کنن سمایت اسرائیل و امریکا انگلستانو همه این کافرهای بزرگ بزرگ جهان چه غیر هندوان اولا ویل کنن جب نید حبل حبل من الناس که گفت مراد ناسها غیر مومنان حبل من اللہ مومنان دار کنمینا وَبَعُوا بغضب من الله و رجوع کردند اینها با غذبی که از جانب خدا هست تورات و انجیل و کتابهای اسمانی را ترک دادن حالا اینها هم مغذوبنه رجوع کردن به غذب بزرگی از جانب خدا و ضربت دلیهم المسکنه و کوبیده شده هست بر آنها پسکی و کمه مسكنه. ذلك این مسکنت و غذب غذب و جلت به سبب این است که انها کانو بودن در زندگی یک فرون به آیات الله آیات الهی را انها انکار کردند و یک طلون الانبیاء و کتل کردن در طول تاریخ اینها انبیاء را بغیر حق حتی خودشان هم می که انها ما انبیاء را می کشیم ذالکه این کبر و کتل انبیاء بما به سبب فرمانی که در طور تاریخ از فرمان کردند و نافرمانی به خاطرین بودن که تانو یا, یا این حق متجاوز بودن هیچ زمانی اعتقادا و عملا اینها در حدود الهی تابنده بودن همیشه تجاوز در اعتقاد تجاوز در عمل تجاوز حالان تجاوز بسمید. تجاوز شبه افیان کسیاں شراب قتل انبیاء قتل انبیاء سبب کفر دے آیات اللہ۔ اذا جواب کرنا حدود دے لائیں شداں فرمہ نا فرمان نشون دے حدی رسید کہ انبیاء شداں وقت نبی ر قتل کر کفر دے آیات ای اللہ شو۔ بس انہی کہ مؤمنن و متقیان اللہ تعالی جدا شون لے سوں هم اهل کتاب برابر وقت قرآن نازل شد من اهل کتاب از اهل کتاب بعض از اهل کتاب جماعاتی از اهل کتاب یک جماعاتی هست بر دین حق آیات الله آناء اللیل کلاوتنی کنن آیات الهی ردر ساعت شب و هم یستدون و آن از حجده خاص برای خدا بله امروز اگر عالمی، حافظی در این صفات باشد فاقیان این خودی خدا بیان کرد چه بین اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله حتی هر کس یک وزیفه داره وزیفه عامرین بالمعروف معروف عن المنکر در روشناییات آیات الهی آن که امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند و لهذا ایمان میارند در روشنایی آیات الهی است در این ادامه الله تعالی فرمود که مجاهد یا تالی آیات الهی اینها میتوانند بر جاده مستقیم ثابت قدم دیمانند وانها خالص منعی خدا تسلیم و خاص برای خدا می ایمان کامل به خدا دارند و به روز آخرت. ایمان کامل به خدا و روز آخرت چیه؟ تمام احکام اولایی را از روی کتابهای آسمانی باور دارند. و روز آخرت را همانطوری که خدا بیان کرده باوردارا یهود و نشارات دیگه نسر نشار دی قیامت ای خیلی خرافاتش ده بوده کیونی گفتا لَدْ تَمَسْخَنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامَ مَا دُدَاتِ اللہ تعالی این اعتقادا از کجا درست کرد کسی ما را آتشی زهنم فقط چند روز محسوس کنه اینکه من نگفتم بازا اللہ تعالی میگه اون آیت ربانی اندو اهل کتاب اولین صفات در حالی که خودشان سجده میکنند کنند برای خدا تشریف میکنند تمام دستورات الهی را و روز آخرت را و درجه چهارم یعمرون بالمعروف این عمل متعدی آنها عمر به معروف الله و از منکر می کند و خلاصای سارعون فی الخیرات ازید دیگر سرعت در خوبی ها می گیرند در خیرات از دیگر سرعت گرفتن در خوبی ها شروران گرامی این محمود است انسان درباب عبادت و خیر باید بی کوشه که از دیگران بری چیزو ایش دیگران نماز، روزه، تلاوت، جک امر بمعروف مهج منکر اینا خلاصه کردر اصر که اصحار اونه پر خیرات اولائی که من اصحالیه این ها حسنان صالحی این صفات بندگان خوب الهی که اللہ تعالی بلچین کرده چه ربانی و مشغول به تلاوت آیات الهی آنال لیل و آنال نهار هست هم در ساعت شب ساعت شب رہنجا ذکر جاید اگر آنال لیل و آنال نهار هم آمده بخاطر احتمام شب اکثر غفلت هست لیکن بندگان خدا غفلت نمی کنن و آیات الهی شب رامی گزرانن و اولئک من الصالحین خلاصه و ما یسألوا من خیرم تمچی و انسان را خیر انجام بدن هرگز ناشکری کرده نمیشوند یک قدری نمیشوند خیر هیچ کس را خدا نادیده نمی گی فلان یغفروا و الله علیم بالمتقیین چرا الله تعالی متقین را میداند دانند کیا متقیان و کیا خیر برای خدا انجام میدند الان تخفیف <تصفيق> دل اخرى وی هست ان الذين اونها که بجای ایمان کفر میکنند. هرگز دفن نمیکنه اکثر آنها اموال آنها و نه اولاد آنها من الله ای من الله شيء چیزی هر قدینا امغال داشته باشتان اولاد داشته، باشتان ازاد خدا را اصورینا هرگز هرگز دفن نیکنند و اولایت اصحاب النار هم فیها خالدون اینها صاحبان جهنم همیشه تو جهنم میمانند نخال انفاق کفار را قرآن عظیم و سبیان که کفار صدقات دارند خیرات دارند همفکری و بیصلح از حقوق بشر دم میزنن، الله تعالی میگه با کفری که آنها دارن این فقط و خیرات آنها انفاق سفلت اليهود على اولمایهم المحرفين الله تعالی میگه مثلا ما یمسکونه في هذه الحياه الدنيا مثلا چي اين انفاق میکنن يعني یعنی یهود و نصره برای بزرگان خودش در این حیات دنیا کم مثل در بربادی و تباہی نشل یک بادی هست که در آن باد چرون سرمای شدیدی باشد این باد با سرمای شدید اثابت کند به زراعتی قومی به واقعی قومی, قومی این سرمای باد شدید با سرمای شدید بر بخوره به زراعتی قومی که اون قوم به خاطر کفر و شرک ظلم کردن بر جانبهای خودشان پس این بعد با این سرما تبخ کند اون هر قوم را لہذا این کفار مثال شرهمونی سکات این هارا بعد کفر و شرک لحذا اجزه میبرد و مثال از نابود نابود میشه وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ دَرَدَنَ عذاب الله تعالی بر آنها ظلم نکرده ولیکن انفسهم یظلمون لکن آنها بر نشرای خوارستان ظلم کردن به خاطر کفر و شرکی که انجام دادن ترقی از معاقبه الامر به معروف کنید لکن شرم محبت با کفار نکوش رای الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دينكم ای مومنین شما امر به کنید نه از منکر کنید و قرار ندهید دوستان سمیمی غیر خود را بتانه سرور لای درونی پارچه که به بدن می‌چسبد آن را بتانه میگن و لای بالایی را زہارا میگن زہارا اللہ تعالی میگه شما راضا نکنید ای کسانی که شما ایمان آوردهید لا تتخیدو به طانت من چرا؟ ایلتا و لا یعلونکم خبالا کم نمی کنم درمیان شما فساد را خبال معنی فساد لا یعلون و من لا یک کمی نمیکنن، کنم نمیکنن در فساد رسانی و دیگه چرا اینها را بطانه قرار ندید راز در دوست شمینی رازدان خود که ودو ما اندتم مشکت شماره خیلی دوست دارند دوست دارند مشکت شماره ما مستریه مشکت شماره تکلیف شماره اینها خیلی دوست دارند تبدت البغضا من افواههن به تحقیق ظاهر شده است بوظت از دهنهای اینها از نیان سقنان اینها بغض ظاهر شده که از طرف بوشم در آمد وما تخفیص دورهم آنچه که مفید آرد دلهای اینها خیلی بزرگتا قد بینا لکم ال آیات ان کنتم تم تاخلون اللہ تعالیٰ نگه من آیات رو چبین کردم برای شما اگر واقعا شما اغل داری اگر اغل داری تو فهمید این کفار یهود نصارا خصوصا روی سخن با نصارا و یهود است دیگه با دیگه کافرها روی سخن زیاد نیست از دهن اینا ظاهر سو دوان چکی دل اینها خیلی اکبره من خدا آگاهم وغیره شما بیان می کنم این کنتم تاکلون اگر شما اغل دارید و بفهمید سر اغل دیائید اسرار خضرا رازهای خضرا کارگاهای خضرا و اینها که امروز با کافرها همکارند نقشه‌ و ترهی دارند هر چی کلمه به خانه مؤمن خبردار تا انتم اولی تحبونهم خبردار شما اینها خاطرندیه شما همینها محبت نیکنید با آنها، لیکن ولایه بونا کم آنها با شما محبت نمیکنه، نزاعهرا نبادن. و شما ایمان دارید به تمام مکتبهای آسمانی، بلکه کتاب کلیه اقلام جنسیه. تمام کتاب احم terminar داری تورات را کتاب خدا قبول داری انجید کتاب خدا قبول داری زبور کتاب خدا قبول داری قرآن را کتاب خدا قبول داری لیکن آنها تمام کتاب های الائی را قبول ندارن لیکن بسیار چرک زبانند و چاپلوش درجه یکند اذا لکو کم قالو آمند وقتی شما را ملاقات میکنم آئی مومنی مومس سلمانی مومس سلمانی و اذا خلو وقتی از مجیس شما جدا میشند و میرون حضو علیکم القنام من الغش نیگذن انگو شروع خود را از خش شهابان غد مومن بودند و صحابه آنگر چورنگی لیغیز بهم بالکفر از محبت صحابه از قداکاری صحابه از اطاعت صحابه از خودگزشتگی صحابه این کو به رنج بیدن شما دیدی ما خان انطالا هر تر فندی که اینها کردند که صحابه را از رسول اللہ جدا کنن نفیلشتن این خاکست اللہ تعالی میگه با شما بر میخورن آمن نا میگن شما که مینی شما که هر که کلمه بخوانن خوشحال بشید که ما امروز با ما تشکیل شد ده نفر خوشحال میشه نمیشه همین دعات ما بره چار نفر با انها در روزید سیلی خوشحال الحمدلله ده نفر با ما تشکیل شد. و صحابه سبحان الله که عشق ایمان نه ایمان ما و نه ایمان صحابه نه خواهش ما و نه خواهش صحابه نشت به آخرتا صحابه صناف اللہ بودن همه طالب رضا خدا بودن اگر کسی را که پیغمبر گفت بله یکی بدست شما هدایت میشه چقدر تزیلت داره صحابه باور داشتن میکن این خبیصه ها سخت اداوت داشتن ایزا صحابه را که ملاقات می کردن دیدن که از ایمان خوشحال میشه از ایمان خوشحال می شدن آمن نا آمن نا آمن وقتی که جدا می شدن حج خشلی شدن که انگوشت خود را می گشدن حسنوین طوره نیه عادت بشری و ایزا خلو وقتی جدا می شدن و میر من تو اذو علیکم الانامن انگوشت نیگزن بر سما از خشمی که برانه هست قلب و پیغمبر من موتو به غیلی کن بمیرید با همان خشمی که دارید بر ابو بکر و عمر و قصف بمیرید قلب و موتو به غیلی کن بمیرید با همان خشمی که دارید نصدی صحابه اِنَّ الله علیم بِبَعْتِ صُدُور اللہ تعالی آگاهش نصبت به اصرار به ذات صدور یعنی از این خاطر به شما ابلاغ کرد. چون الله تعالى علیم بذات ذات شدوده بیا ابلاغ کرد. نه ها شما غافل شد. از این اسراف شما خبر نداشتی. الله تعالى بذات ذات شدود خبر دارد. میداند که یهود لشکر چه اداوتی به پیغمبر و چه اداوتی به اصحاب پیغمبر دارند. اطلاع کامل خدا دارد و خدا به شما ابلاغ کرد. لذا به حوصله وقت حاضرند ابرغم به الصحابة بن تمشکم حسناتون تسوهم اگر بیشمار حسنایی برسد خوبی برسد حکومت کی برسد چار روز تو حسناتون تسوهم خیلی برای نهابده و اگر برسد بیشمار سعیاتون یک بدیش کسی سمتتان را خیلی خوشحال میشی. و به نیمت صحابه انها مغمون میشن. و اگر مصیبتی مشکلی به صحابه می بشید این خیلی خوشحال میشه قرآن مار در آفتین جوابتی که چنین دشمنان مار در آفتین تشبایت اینها را جکن کرده گذار الله تعالی میگن نه من شما خبردار کردن اینها دشمنان. هم تا اون زمانی که وقت نیاید شما باید سبر کنید اگر صبر کردید و اگر تقویر پیشه خود کردید تو هرگز مکری اینها برای شما هیچ نراری ندارد لا یزرکم که دهم شیعا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ تمام آمال آنها را که بر علیه شما و پیغمبر و اسلام اینها برنامه رزی کنه همه در قدرت خدا اصفر خدا تمام آمال را با خود آنها احاطه کرده اللہ تعالی هم اینطور میکنه که یک خود تمام را برباد بکنه فیران را جمع کر با تمام تجهیزات را آورد توی دریای ابو جه علا با تمام تجیزات داورد داورد ورد داور داور از حرم خودش از حرم امن الائی بیرون شد آمد کافلش نجات کرد لیکن از آنجا که اجلش مسیده بود داورد در بدر رو همارا سرنگون کرد همه سردمداران خفر سرنگون کرد تو اللہ تعالی اعمال اینها را اخاطه کرده است این اوث و این بنو کرزا و بنو قین و قا اونا به جزا آمال خواهند رسید متعلق لا یذرکم قیدهم شبر دست باشید شبر بر قاعت، شبر بر عبادت، صبر بر مصیبت، صبر ان المافیت، تقوی دست باشید چند آنها برشما ضرری ندارد إن متعلق باليه لا يضركم كادهم وإذ غدوت من أهلك تظبذ المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم إذا همت طائفة منهم تسلوا والله وليهما وعلى الله يتوكل المؤمنون ولقد نصر الله ببدر وأنتم أذلة فتقوا الله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى بشهابك صبر داشباشي شما تقوید هسته باشید اوامر الهی را انجام بدید منحیات اشتناب بکنید اطاعت کنید پیغمبر را که دین برای این برای شما هیچ ضروری ند لا یذر رکم که دون به عنوان نمونه الله تعالی واقع بدر احد را بیان میکنه این کسی احد هست که در نصف شوال سنه سه هجری نصف شوال سنه سه هجری دو هجری در رمضان سروران گرامی مارکه بعد رخ داد تو مه رمضان یک سال بعد در سه شوال نصف شوال نصف شوال سنه سه هجری یک سال بعد مارکه احود رخ تار پیغمبر علیہ السلام در موقع احود مشوره گرفتند از صحابہ تو چکار کریں گرین بیرون از مدینه برای دفاع یا داخل مدینه باشی و دفاع کریں چونو چرا شد خب آخر پیغمبر علیہ السلام گفت باید دلیم راست داخل خانه و زره کوشید و سلاح برداشت و بیرون آمد صحابه گفتن یا رسول هر چی شما بگی یک دشتری گفت و بیشتر دشتها منافق این گفتن نباشید اینجا داخل اگر آمدن اینجا دیگه همه کس بجان آنه همین صحابه ایک مشره دادن که نبیریم بیرون اینجا زیر دست و پاد و جلوی زنان و بچه جنگ کردن آسان نیست بیرون بریم هرچی صد شد خلاشا پیغمبر وقتی داخل شد پیغمبر علیسی وقتی یار شما خود پیغمبر علیسی و السلام فرمودن نه برای نبی مناسب نیست که زره بپوشد و بعد دیگه زره را باز کنه بدون جن رفتن به احد صبح در شمال مدینه جایی که مسجد و نبی هست تقریباً شمال درست در شمال غربی هست فا این زمان شمال شرقی کوه احود شما ببینید از این سطین گرفت تا اونجا فرش کوه احود این مدینه منوره و مسجد النبی اینجا هست بسرکین از این پایین آمدند از جنوبیاند، از مکه آمدن و از تایید مدینه رفتند اون طرف که را که به اصطلاح انتهای کوه احد او است اونجا پشت بکوز زدند ولی از آنجا خواستند که دیگه از این طرف به مدینه حمله کنند چرا؟ در جنوب مدینه آبادی های یهود و نشارا بود یهود بودن بنو قرزا و بنو نجیر و قبا و بودن و لغا در قسم این قسمت هم باغ بودن این قسمت تمام باغ و آبادی این قسمت باغ این پایین هم خالیه اون طرف هم خالیه و پیغمبر الاساسلمانی که خندک زده هم از اینجا گرفتن تا اونجا این قسمت غرب مدینه را خندک زدند. چه قسمت جنوب مدینه با قسمت شرط مدینه باب آقا هم حاش رخش با الان هم که انسان نگاه می کند که شر خیلی وسیع شده همه باقا با. بس پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلام رفتند پانجا از اونجا حرکت کرده از صور زود از غدوت من اهلی تا اونجا دیگه الان با ماشین تقریباً ده دقیقه باری میشه اگر ترافیق مماشه دقیقه بیشتر نیست تا احود خیلی نجدیکه خوب اون دوان که باشته و بالاش کرده رد خطمان دیگه صبح حرکت کردن ولی آزا اونجا رشیده خیلی غمبر علیه صلی به وقت جنگ حالان این کوه احود از این قسمت کمین طور رودخانه ای دارد میاد از کنار احود به انی مثل همین این رودخانه اینجا یه کوهکی کوچیکیه جدا از فرگول اینجا اون کوهیه این رودخانه که علاو پر از خاکش کردن دو ساله ها لیکن معلومش که خیلی گودیه بوده و این رودخانه از هنین طرف از این طرف میاد و این طرفه اگر لشکری از این رودخانه دیاید لحاظا دیگ نداره چرا اینجا میدانه این یک کوه کوچکیه چه الانمو کوه کوچک کمی مانده کمرا کشیدند دو بردن. خب پشتش؟ میدان هست. اون طرف کوه بزرگ احود هست کفار خود را به کوه گرسته میسند رسول علیه السلام آمد و از این رودخانه بزرگ گذاشتند از این رودخانه و اینجا همون کوهیه که به اینهی الان این طور گذاشته اینطوره همینطوره اینجا یک گردنه ای دارد معلوم میشود چی نظر پرسیدن من اینه خیلی پرسیدم آنچه که من برداشت کردم همین کوه یک طرقش به داخل رودخانه راهی که الان هم ندارد اون زمان تخمین زده میشه که این روزخانه خیلی گود بوده و راهی اصلا نبوده غیر از همین که از اینجا یک راهی بوده باز از این گردنه اون طرف این طرف با دره, دره بوده الان که مدینه منوره همون به احود چشفیده شهر مدینه و جایی که نبرد بوده و شهده احود دفن یک چاردیوالی تمام دور اون میدانی را که جنگ شده حالا ساختمان بشتن جایی که شهده احود دفنن هنوز هم طور میدانه و همون دیواری چاردیواری هست داخلش چکبری معلوم نمیشه میدان صافی بی نظر رسول الله صلی الله علیه و آله محمد اثر پنجاه نفر را اینجا مستقر کردند که پشت سر رسول الله است. این گذرگاه بر غنبرومات را اینجا مستقر کردند و بودن طرفه اینجا یک کوهی به اصطلاح ششتگین کوهی مثل این کوهی که در وسط اینجا قرار داشت کوه اون خیلی بزرگ بود. اینجا پیغمبر پشت سر اون رومات رو مغرر کردن که خب جلوی ما هرچی از کفار دیگر به این قسمت کوه قرار گرفته بودن دامنه کوه را کفار او احد را این طرف خالی بود این طرف کوه را کفار پشت سر پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم کوه کوچکی جدا از احد اینجا رومات را مستقر کرد که از این رودخانه کسی نیاد از پشت ما حمله نکنند روح ما که با دشمنه پشت ما محفوظ بشه خلاصا این پشت را رسول پاسته سلام مجبود کردن با پنجه رومات که روی این کل عبیستان از هر طرف این طرف هم اون خانه دید داره تکر من اینه و این خانه که میره تاین این هم دید داره اگر کسی بیاید راهش فقط همین گردنه ای که از این کوی کوچه بیان بیرو که راهی نداشت که از هر جا چون اینجا یک در ریباز از کوی اونس زیر رو بین رودخانه بگردن من اونجا که تقنیمی زدم این کو بود و یک گردنه دارد فقط از همین الان که کو را صاف کردن سنگا و مچیش را بردن یکی همون پر پر گردنه شو شخص شد سرسول فرسلام فرمود بالا با این کوه دو غصم این کوه کوچکیه. کیه کسی بزرگی نیز مثل این کوه بے صلاح بلا تشویح این کوه کیراندادی بیوین این طرف اشم کوه وسط اشید گردنه اون طرف هم کوه بے اینی همیتون رمبر علیہ السلام رمات رنگم و صغار کر و خودش راکتا توی میدان جنگ شروع شد بین این کوه و اون کوه اوهود میدانی صافی و بزرگیه اونجا وقت نبر شروع شد صحابه با اولین حمله اینها فرار کردند اونجا یک گردنهی دیده میشه کوه بزرگیه که اون قسمت اهد اینها از اونجا پشت اون کو راست کن خود را مستقر زده بودم به اون کو تو صحابه توی میدان جمع آوری چی کردن مال غنیمت این رواب دیدن که بل کفار فرار کردن دو دید داشتن که دارم نیدن حتیٰ که لباس آئے خود را یکی گفت که اون زنان اینها هم ها را بلند کردن دو دیدن میشد شود ران آنها کی فرار نیدن کن باست صحابہ انجا عبداللہ ابن جبیر حر پیغنبر علیہ السلام فرمودن که شما باید هم انجا مستغرب باستی پیغنبر گفتن اینها گفتن نا بابا میدانه ایسان نگاه میکنند جایی که شهده ای حد دفنن بیمکور نجدی که چون شهده اکثر همینکه اینجا شهید شدند از هفتاد نفر شش نفر نه هشت نفر که با اون فرنجا مانده بوده اینجا شهید شدند باقی به دامنه که رفتند خالد بن ولید این را که از این طرف ایت خانه میامد همین رودخانه را آورد و آورد و از گردن بالا آمد خب اونها همون منتظر شوند که از پشت خالد آمد با لشکرش اونها از جلو. هم صحابه از توشت و از زلو مورد حمله قرار گیرشت از طرف احود کفار دسته بزرگان ها و از توشت خالد با لشکر خودش مسلمانها در در محاصره افتاد لازه وقتی که میدان در وسط این می میدانی جنگ خیلی گرم شد صحابه شهید و زخمی شدن اون قسمتی از صحابه به این طرف کو خرار کردن بالو میشه که بیل این کو که مغره این تنجه نفر بوده و تا اون احود کمی فاصله هست جنگ در وسط گرفته پیغمبر علیه سلام را اونا بعضی گفتن که به طرف ایک میاد بزرگ پیغمبر بکرد این و صحابه به این طرف رفتن این طرف خوده الله سبحانه و تعالی داستان فهود و بد که آنها مکه کردم من چطور از مکه آنها همونه که لا یذرکم قیدهم نمونش را اللہ تعالی بیان کرد دیدید دی که کوریشی ها چقدر مکر کردن و من شما را از مکر آنها بجاد دادم اگر الان شما هم همیشه ثابت خدم بمالی خبر کنید تقوید داشته باشید در مراحل بعدی هم من شما را کمس خواهم کرد و آفر دوانای الحمدلله